با امداد شما نیکو فگاهتون فرروخ انشاءالله بینندگان عزیز و نازنین و بزرگوان برنامه نسیم شرقی خب نوید و بشارت میدیم طرفداران بیشمار علوم اسلامی طب سنتی و طب اسلامی همینک مهیا شدن که این بخش رو تقدمیشون بکنیم با افتخار خدمت شما هستیم و مهمان صدیق و عزیز و عرجمند و بارمون حکیم عالی قدر استاد محترم جناب حجاقای زیادی خیلی خوش آمدید از سلام بنده رو بپذیرید شما رو با آفیت و امنیت بداره علیکم السلام هم رو با آفیت و امنیت بداره این ملت خوب و عزیز رو با آفیت و امنیت بداره در خدمتتون است متشکرم ایام الله دریفت رو به حضرت عالی روحانیت محترم و سادات معزز تبریک میگم و مجدودا خوشامد و خیر مقدم از میکنم ما متقابلن ایام دهی فجر و تبریک از کنم. دهه نور و فجر مولا صاحب زمان است ملت شریف ایران مقدمات ظهور مولا صاحب زمان رو دارن فراهم میکنم و این از افتخارات جهان معاصره که ملت عزیز فهیم با شعور دارای اعمال صالح و نیت خالص در اطاعت و طبعیت کامل از بدایت حق هستن انشاءالله معمولا برنامه ها رو حضرت با فرمایشی از ائمه معصوم خصوصا ولی نهمتون حضرت رضا علیه السلام زینت میباشید بله بله من توازه میکنم در حال مرتبط با چشم شرایط گفتگومون چه فرمایید فرمایی در خدمت شما هست چشم بسم الله الرحمن الرحیم امام رضا علیه السلام فرمودند لو ان الناس قصدوا فی المطعم لستقامت ابدانهم اگر مردم میان روی و اعتدال در آشامیدنیا و خوراکیاشون داشته باشند هر بدنهاشون استقامت لازم در مقابل بیماریها داشت و تثبیت سلامتی و استمرار سلامتی داشتم. اما وقتی که از حد اعتدال بیرون برم، پرخوری کنم یا بدخوری کنم یا چیزایی که مربوط به استمرار سلامتی نمیشه، کاری که میخواد انجام بده و شغلی که داره در نظر بگیره، آسانس شیمیایی نباشه، قندهای شیمیایی نباشه. کافین زیاد نباشه ترانس چربی بالا مثل روغن جامد مثل خام سرشیر مثل تهدیک همانند اینا زیاد نباشه نباشم بهتر چیزهایی که سودیوم فشرده زیاد داره اینها نباشه مصرف در نمک به حد اعتدال باشه یعنی اول و آخر غذا به مقدار لازم مثلا نیم گرم یک گرم کافیه که تو 24 ساعت چار الا پنگ گرم نمک بیشتر نشه کسانی که خونم ندارم بیماری های متابولیکی ندارم اما بیش از اندازه مصرف کردم که متاسفانه طبق آخرین آمار ده الا بیس گرم مردم روزانه نمک مصرف میکنن. گاهی خراسانی های بزرگوار حواسشون نیست خیارشور یا شوریایی که درست میکنن زیاد میخورن نه حد اعتدال آدم سالم تو 24 ساعت 4 الى 5 گرم بیشتر نشه اگر کسایی بیماری خاص دارن بیماری های متابولیکی قند خون چربی خون و مانند اینها فشار خون اینها باید جایگزین سرکه طبیعی بگذارن من. یا سرکه طبیعی انگور اسکاری یا سرکه طبیعی سیب اول آخر قضاشون مسمل خل یعنی مقدار بسیار کمی سرکه طبیعی اول آخر غذا بخورن نکه قاشق چای خوری تقریبا یک گرم من. بینندگان عزیز و بزرگوارمون میتونن پرسش هاشون رو به سامانه پیمکوتا سی ازار ارسال کنن انشالله به تدریج و پنشنبه ها مطرح می کنیم خدمت استاد زیایی عزیز عجمن بیننده محترمی پیامک زدن 37 سالشونه قلیزت خونه بالا دارن و صورتشون هم مدابع جوش میزنه و لک های جوش هم برطرف نمیشه و میمونه. حالا این دوتا مورد متفاوت هم هست ده ده. خواهش می کنم بفرمید و ادامه سال رو قالب افراد از سن 25 سالگی کم کم حس تشنگی در آنها از بین میره. هضا خود شخص باید برنامه نوشیدنی حلال داشته باش. و هیچ مایعی هم جایگزین آب و آبجوش بلرب نمیشه. احضا سنای بالای 25 سالگی در 24 ساعت بین 6 لیوان تا 8 لیوان، آب و آشامیدنی سالم و آب جوش باید مصرف کن. یکی از علل جوش ها خود آب نخوردنه. آب جوش ولن نخوردنه. یکی دیگه از عللش مصرف بیش از اندازه قندهای شیمیایی به همچنین مواد نشستهیه. بعد این بزرگوارا به همراه قضاشون سبزی خوردن و یا کاهو بدون سوس، نمیخورن یا میوجات مثل پرتقال شیرین لیمو شیرین نمیخورن به همراه غذا. اینها جوش های چرکیشون بیشتر میش و گاهی گسترده میشه، گاهی مختزییات سن جوانیه که جوش غرور جوانیه. گاهی هااج بعضی مسائل و دیگه است مثل زونا که بسیار دردناک و می سوزونه الان نظر ظاهری مناطقی که جوش زده با محلول سرکه سیب پنبه رو آغشته می کنیم به محلول سرکه سیب و این جوش ها می ماردین چند نوبت باید در بیاد دو نوبت دو, نوبت دو نوبت کافیه دو نوبت کافیه بعد در مجاورت هوا که خوش شد بعد مثلا فرض کنید پماد گیاهی آویشن شیرازی هست مثلا اکنیل بله. یا جوشانده آویشن شیرازی باز این رو هم با پنبه آغش نمی کنن روی این جوش ها می کشند. این جوش ها بسیار کم میشن. اگر بخواهیم جای لک نمونه اینجا جوش ها رو نباید باش بازی کنن و یا بکنن هم جاش کک و مک میشه لک های ریز میشه هم گود گود میشه چاله چاله میشه برای درمان اون کک و مکشون یوبوست مزمنشون رو درمان کنن در پیک بار نور خورشید ده صبح تا دو بعد از ظهر در ماه زمستان و پاییز ده صبح تا چهار بعد از ظهر در ماه زمستان و پاییز تابستون استخله در ماه تابستون و بهار ده صبح تا چهار بعد از ظهر تو نور مستقیم و آفتاب نباشن به اصطلاح علمی تو پیک بار نور خورشید نباشه ده صبح تا دو بعد از ظهر زمستان پاییز ده صبح تا چهار بعد از ظهر بهار و تابستون در نور مستقیم خورشید نباشن سوم اینکه در درمانش حاجیقا چلقوز چلقوز خام یک میوه خشت یا قاشق پلوخوری مغزش رو هم نظر ظاهری همین پنبه رو که آغشته کنن به سرکه سیب بکشن کافیه. اگر لکه ها قهوهی درشت باشه یا لکه های سیاه باشن اینجا میتونن از برگه زردالو یا کشته یا قیسی به شرطی که تیزاب نزده باشن. اینایی که رنگشون یک کم کدرتره. در اگر باشه تیزاب زنن که داره مهده شون زرد دار. برگی زردالو یا کشته روزی یک مشت بخورن تصفیه کرده بسیار معثر یک بار دیگه مؤمنا این لکه های قهوهی و سیاک درشته علامت فقر ویتامین بشیشه بعد متخصصین بزرگوار پوست در تیه دو ماه شهست عدد قرص ویتامین بشیش میدن. میگم روزی یک عدد بخوره. حالا زیر نظر متخصصین پوست که ماشاءالله زیادن آقایون دکتران زیادن ماشاءالله میتونن مراجعه کنن. یک بار دیگه میخواییم از داروهای طبیعی استفاده کنیم. همیشه پوستشون شفاف، براغ و درخشان باشه. اینجا هر روز یک لیوان آب انار شیرین بخورن فصلی که نبود یک قاشق مرب بخوری رب انار شیرین بخورن بعدش میتونن یه لیوان آب بخورن بعد از رب انار شیرین چنین افرادی پوستشون شفاف برواقی درخشان میشه اینها هم بعضی متخصصین تو کتاباشون آوردن متشکرم چکرم بلد. حضرت حالی در چندین برنامه در خصوص رفع کبد چرب صحبت کردین حالا پرسش دیگری هم مشابه مطرح شده کبد بسیار چرب با گریدش چه دیاهداروی باید استفاده دونه یازده چیز ها کبد و چرب میکنه بیش از هیفته چیز کبد و چرب و درمان میکنه این هایی که صحبت کردم تا حوزه علمی سه های صالحمون و دانشی های عزیز همون میگردم های چاپ کردم حالا اینا رو میتونن از مدرسه آیتولا از ما خویی بگیرم بعد به صحبه تکثیر کنم این یازده چیزی هست که علت ایجاد کبد چرب یکی چاقی و اضافه وزنه و در چربی و مخصوصاً مخصوصا تیریگلیسیری دخون وقتی بالا بره یکی از ذرعاش کبد و چرب دوم کسانی که کم تحرک و پرخوری دارن چند تا بیماری میاره یکیش هم کبد چرب کسانی که مسطح چربی زیاد دارن سخ کردنی، تفتادنی، بودادنی، چند بیماری میاره حتی سوزش چشم و خارش چشم یکیش هم ایجاد کبد چرب کسانی که تخم مرغ نیمرو یا آب پس زیاد میخورن چند بیماری میاره یکیش کبد چرب حتی نفریت ورمه و ورمه تحال هم میاره کسانی که از دیابیتی های عزیز بیماری قند به نوع یک یا دو دارن اما بدنشون این انسولین رو پس میزنه انسولین رو پس میزنه مخصوصا اگر انسولین تزریقی بزنن اینها هم دوچاره کبد چرب میشن چه انسولین کریستال بزنن چه انسولین شیری رنگ کسانی که تجمع چربی در سلول های کبدیشون زیاد بشه یعنی آنزیم های کبدیشون بالا باشه تو آزمایش هپاتولوژی کبد شناسیشون که گرفتن پیش دکتر نشون بده که زیاده اینها هم کبد چد باز انواعی داره اگر درمان نکنن کم کم به حالت فیبروز و سیروز کبدی میرن چروکی کبد و خشکی کبد کسانی که خود درمانی های قلط دارن و از پیش خودشون کاهش وزنشون رو سریع انجام میدن مثلا در هفته بیش از دو کیلو وزنشون رو کاهش میدن این عوارض سوء سو داره علا برسکته کبد رو هم چرب میکنم کسانی که دیابت نوع دو هستن اما و نوسانی اما درمان هم نمی بعد و بدخوریشون ادامه میدن. تو توچاره کبد چرب میکن. کسانی که داروهای شیمیایی خاصی مصرف میکنن که اثر سو رو کبد داره مخصوصا آنتی بیوتیک ها چک خشکن ها بدون تجویز متخصص بدون اینکه عفونت و چرک داخلی ثابت بشه نه از پیشغشون میخوررم که متاسفانه تو کشورون زیاده. زیاده. اینم یکی از علل ایجاد کبد چربه. کسانی که آب آلوده، شیر آلوده یا جگرسی های موندهمال گوسفند یا گاب یا حیوانات اهلی مصرف میکنن چون هر تیکه جیگر سیاه به مقدار نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره درسته اینا حلال گوشت و خوردنش اشکال نداره اما زندگی شهری و کم تحرکی حالا بیاد هر روز یکی دو تا سیخ جیگر سیاه بخوره خود خب معلومه کبدش چرمش میشه کلسترول بد خون بالا میره 11ام ما شالله تو کشورون خیلی کنه عضلات و لوت‌ها اینطوریه کسانی که مسکرات بخورن مواد نسکننده بخورن اینها هم چند تا بیماری میاره یکیش هم کبدشون چرد میشه که تو تب داخلی هاریسان و تب داخلی نلسون بیان بعد اقصامش هم که زردی عادی زردی پیشرفته زردی مجهول تا آخر نوعه A, B حاج هم خدود 17 20 تا هم درمان داره باید چند تا رو بگم مثلا هر روز خوردن یک مش زرد زردالو دوم خوردن هفت برگ کاسنی یا یک استکان عرق کاسنی سوم خوردن عرق شاتره چهارم زعفران مسل خراسان افراوانه نمی گیرن هم پیشگیری هم در پنجم مثلا کلم بروکلی به اندازه 100 گرم کافی. اگر مثلا هپاتیتش پیشرفته است، مثلا هپاتیت نوع B ویروسیه. اینجا آب به اضافه عسل به اضافه نعنو اینها رو قاطی همدیگه میکنن و به اضافه سکنجبین. این چهار تا رو قاطی همدیگه میکنن میخورن. یه لیوان آب یه قاشق پلوخوری عسل، یه قاشق چایخوری پودر نعنا، یه قاشق پلوخوری سکنجبین. این چهار رو مخلوط می‌کنن میخورن. قویترین دارو در درمان هپاتیت نوع B به نوع ویروسی که بعضی از متخصصین ما مثل دکتر سید علی ابو تو کتاب درمان با گیاه جلد یک آورد. یک بار دیگه ما من سکنجبین آنسولی سکنجبین انسلی که پیاز دشتی یا پیاز موش که عربا میگن انسل با عین و نون و صاد لام آخر این رو توی سکنجبین با شعله کم میجوشونم بعد آبش صاف میکنم روزی یک الا دو قاشق پلوخوری با فاصله دوازده ساعت مصرف میکنم این هم یکی از دروهای بسیار قوی در درمان کبد چرم که آقای بزرگوار دکتر سل احمد ساقبی متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی تجویزم حتی بعضی کارخانجات تولید دارو به نوع داروهای گیاهی هم از بعضی کنگرهای خاص خوراکی قرص درست کردن قرص متبی که این قرص کنگره این هم در درمان کبد چرب مفید. داروهای دیگه هم مطرح تا تا که حاشیه زدم خیلی متشکرم سلامتش. خب به ادامه این داروگیاهی ها هم میپردازیم خیلی زود برمیکردیم شما یه بخش کتایی تصاویری ملاحظه بکنید در خدمت جناب جاهای زیایی عزیز هستید درود بر شما همه ما میدونیم بیست دو بهمن ما تجلی اراده و شعور و بصیرت و بینش و پداکاری مردم ایران اسلامی در صحنه‌های های متفاوت و مختلف بوده و هست و خواهد بود انشالله یوم الله 22 بهمن ماه ایران اسلامی همیشه سرفراز همیشه پاینده متشکرم گفتگومون رو ادامه میدیم با استاد محترم حضرت هایتولازیایی مدرس حجمند و عالی ردر طب سنتی و اسلامی اون موارد دیگر رو برای رفع کبت های چرب برمو موارد دیگری هست اگر ممکنه خواهش میکنم فهرسوار بفرمایید چون پرسش های متعددی پیشونی داریم چشک چکرم زیر نظر کارشناس تقضیه یا متخصص داخلی بزرگوارایی که اضافه وزد دارن بین پنگ درصد تا ده درصد کاهش وزد داشته باشن در یک هفته بیشتر نه محدودیت سنجیده در مصرف انرژی داشته باشن یعنی مثلا قندشیگر مفت میره مهمونی گردش حالا دیگه مشمش نخوره یک سوم یک حبه ی قند در 24 ساعت کافیه یک سوم، یک حبه ی قند در 24 ساعت برای شخص کافیه حالا بزرگوارا تو 24 ساعت چقدر چایی میخورن با چند تا قند طب بعدا فاز که مربا هم صبح خورده خیلی ها عادت دارن بلا فاصله بعد از صرف غذا چای میخورن این بسیار اشتباهه دوچار ناراحتی های غیر عضوی معده میشن این خونشون کم میشه به خاطر کافئین چای آهن بدن کم میشه درمالشیگی می کنه نه که قظام حذ این اشتباه مشهوره که بین بعضی افراد است بسیار کار اشتباهیه باید دو ساعت فاصله باشه از قضا تا دوچار ناراتی های غیر عضوی معده نشن یا مثلا بزرگوارا صبح چای شیرین خورده بین روز گلدیس تقدیس از یک آب شیمیایی میخورد و به همراه قضاش هم نوشابه گازدار از این حرفا میخورد با هر مارکی حالا اینها هر آبمیوه شیمیایی یا مثلا هر نوشابه گازداری به مقدار دوازده حبه قند خدا آدم گریفاش میکنه با قول مکانیکا این نم کالری. فکر میکنید بعد از آن نون قندی میخورن میگم شب دوباره یک به عنوان دسر این شیرینکا بعد از قازاشون میخورن. بله. میخوام بگم مصرف کالریشون کم کنم محدودیت سنجیده داشته باشن در مصرف انرژیشون. کودکانی که چاقم این در هفته نیم کیلو کم کنن. افرادی که نیم میان سال یا که هنسال در هفته میتونن دو کیلو کم کنن بیشتر نه گفتیم که کبد چرپ اگر تیریگلیسید خونش بالاست خب تخمه ای نشکن بخوا و یا جا دارن ها جا همهش روح میرن تخمه آفتابگردون میشکنن میخوان. اینجا موامنا اگر خودش آتیشی باشه آفتابگردون یا روغن آفتابگردون زیاد خوردن شهرتش خیلی زیادتر میشه این هم خطره. مخصوصا اگر جوان عذب باشه یعنی ازدواج نکرده باشه از اون طرف هم حاجبا تیریگلی خون بالا میره یا تهدیگ میخورن زیاد یا صاف کردنی زیاد میخورن و کم تحرک پس باید درصد در تیریگلی سیرید خونشون رو پایین بیارن که نه کبدشون شه و نه گرفتگی اروغ کرانه به قلب بگیر یکی هم کاهش مقامتشون در مقابل انسالین بدنش مقاومت داشت، حالا اینا کاهش بده. زیر نظر یک متخصص هورمون یا متابولیست یا قدرت. یکی دیگه این داروهای مصرفیشونو زیر نظر متخصص داروشناس باید این داروهای مصرفی که دکتر تجویز کردیم زیر نظر متخصص داروشناس شیمیایی کنترل در مصرف بشه، چون بعضی از این داروهای خاص کبد رو چرب میکنه. من حاج ها چند روز قبل یه مریضی اومده بود بعد یه بزرگواری و دکتر یه بزرگواری بود بعد این شک کردم به این دارو خود مریض که به دیست بود بعد این دروهای تره جنریک ایران و دروهای تره جنریک مال خارج هست که مرجان رسولی مال پرستاری سر پرستاریم و دکتر بزرگوار دیگه خلاص اینا ترجمه کردن این کتاب آمریکایی ها من چاپ دو هزار و تو خونه دارم. بعد در آوردم حاجوان اصلا خود اون داروه خودش نارسایی کبد می آورد و کبد چرب می کرد. اون بزرگوار مثل یه سرشیلو بوده یا حواظش برده خدا اصلا این تجریز این بنده خودم با زمد تا این دارو خاص پیدا کرده بود که کمیاب. می خواهم بگم مؤمنان. سیر نظر متخصص داروشناس. باید این داروهایی که تجویز میشه ترسط دکترای عزیز ما باز کنترل در مصرف بشه چون گاهی به خاطر که سرشون شلقه موامنا حواس آدم پرف میشه یه آدم که معصوم نیست حتی گوینده درست ها. اصاد اتفاقا خیلی جالب بود که برخی از اتباع پیش و قدیمی رو من میدیدم اینها به مریض هاشون توصیه میکردن وقتی داروتون از داروخونه تهیه کردید بیارید ما دارو رو ببینیم. احسنت، احسنت اونها رو کنترل میکردن که داروی اشتباه تو سوبر داروی اونا قرار نگ باشه. بسیار کار خوبیه. ولی خب الان دیگه با سو شلوغ در. میخواستم شما همه دوست دارم خواستم بگم به خاطر اینکه بیماری شخص لانه نشه طول نکشه درمان آسیبایی. مجاور ایجاد نشه تو بحث ها جواب افرادی که مثلا حواسشون پرته مسکرات میخورن بنگ و چرس و هشیش و و الستی و کریستال و چه جامعه چه مایه شامپاین و ودکا و ویسکی مدلوه مختلف دشمن قربی و شرقی جوان و نوجوانم ما رو دوست نداره میگه من چرا باز و سرباز پیاده نظام پیاده کنم من میام این جوانای مردم به دست خودشون مبتلا میکنم که زایر بشن همه دلنگون و تکر و گیج بزن بزنن بدنشون هم قرار درد بشه بعد دیگه قدرت دفاعی ندارن بعد با یه هجوم کل کشور اشغال کنن مثل همین بلایی که به کشور اسپانیا آوردن دیویز سال هاجغا موسیقی مبتزل رخص آور خالی علنی کنسرت های خیابانی علنی اختلاط زن و مرد و دختر و پسر علنی با کسابت کاری ها بعد از 200 سال ها جقا صلیبیون یه حمله به اسپانیا کردن کل اسپانیا رو گرفتن هزار مسجد مسلمانان رو تبدیل به هزار کلیسا کردن که تو هم عکسا و مجسم های سکسی و نمیسکسی حالا همون دلا رو میخوان سر کشورای اسلامی بیارن این پدر مادرهای های زرنگ جوانان و جوانان عزیز ما که هم از ذریب حوشی متوسط به بالا برخوردارن، هم حوشیاری لازم در انجام کار سعی دارن، هم واقع نگر واقع بین دارای آینده مگری سعی به خاطر خودشون و مملکتشون و بقای عزتشون باید مواظب باشن لب به این مواد افیونی و به این مواد مسکرات مست نزنن چون که دنیا و آخرتشون خراب میشه تو بحث دنیا یکی از چیزایی که خراب میشه کبدشون خراب میشه و مبتلا به کبد چرب میشن. لذا من اینجا به زبون مزاح و تنز گفتم به افراد لات و نیمچلات گوییم الکل و مسکرات نخویی. مطلب هفتم هجرا میوهای متنوع، سالم، تازه و همچنین کازوهای سبوستار و شلتوکدار مثل سبوس گندم. سبوس جو، شلتو که برنج، اینها رو به همراه برنج سفیدشون، ماکارونیشون، کوکوس زمینیشون بخورن. خیلی فواید داره، فیبر گیاهی داره اینها، خیلی فایده. بحث فایبر یکی از بحث‌های دیگه اینه که پیشگیری می‌کنه و درمان می‌کنه کبده، چبد رو که این میوه‌جات و سبزیجات، علاوه بر فیبر گیاهی و ویتامین‌ها و املاح، مواد آنتی اکسیدان هم داره. به هشتم، تمشک، ماشاءالله من شاید دوربرش پره تمشکه. از نقنده را ای ور ای ور که بگیرین ترق و صد کارده و ای طرف ها ترقبه و, و توت فرنگی، کلم بروکلی که گفتم. سکنجبین آنسالی گفتم. بادام شیرین خام، بادام شیرین درختی خام. برای مدتی کسانی که کبد چهر دارن، کل چربی ها رو از جیره قضاییشون حصف کنن چه جامعه، چه مایه چه گیاهی، چه حیوانی به فقط روغن زیتون بخورن فعلا، تا انشاءالله بهبودی حاصلش یه قشب پلوخوری بانه ها، یه قشب پلوخوری باشن برای تصفیه کبدشون هم کشته زردالون یا برگه زردالون این از مرحوم دکتر شیخ گفتن از اساتید بزرگوار مشهد مقدس برن دکتر شیخ مرحوم شدن حالی. که بیمارستان تخصصی فوق تخصیصی کودکان هم هر شاده و یکی هم مرحوم دکتر شاملو خدا عرضشون رو رحمت کنه اینا از سرامده دکترای اولیه مشهد برن که مرحوم شد تو بحث حجامت اگر زردی عادی بود یا یرقان نوع ای بود چه در کودکان چه در بزرگ سالان. از این لاله گوش با تیغ جواهر که متخصص دکتر حجامت میزنه دو سه قطره خون میگه این هم در درمان زردی نوع ای زردی عادی یرقانه عادی بافید سیزهون بحث آب آشامیدنی سالم و آبجوش جوش ولرمه که گفتیم دو تا چا لیوان تو 24 ساعت هر 6 ساعت دو لیوان مطلب دوازدهم هر روز دو لیوان آب سیب طبیعی تازه بخور یک عددم کدو مسمو کدو خورشتی با پوستش بخورن بخار پز یا خام نیمگرم زعفرانم هم عرق شاتره هر روز نصف استکان که گفتم سکنجبین نعنایی هم که گفتم حتی تو کتاب های تخصصی هست که بعد از سکته های قلبی و عروقی و مغزی دومین بیماری ها جواب تو بحث قرن 21 و اواخر 20 بحث کبده چربه و گاهی این اشتباه به خاطر ترجمه از کتاب های قربیه مثلا شیش ماه تموم میشه بچه سنش میگه از یک چهارم زرده تخماماق شروع کن به این بچه بده خب زرده تخماماق کلسترول بدش LDLش بالاست حالا هر روز به این بچه یک چهارم زرده تخمام میدم به دست خودشون کبد بچه‌شون رو چرب می‌کنن اگر فرمایش امام صادق علیه السلام که در بهار علامه مجلسی جلد 66 چاپ ثانیه تهران جلد 63 چاپ لبنانی آل البیت اینا هست اینجا اگر این زردۀ تخم مرغ با آب پیاز خورده شه کلسترول بده این زردۀ تخم مرغ ادا می‌میره لذا امام صادق علیه السلام فرمودند چخم رو با پیاز بخونیم تا تسلو به شرائعین نگیریم مطلب دیگه هم خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سیادتی ها که از سرامت های تخصصی در بیماری های افونی میانسالان و و کودکان بودن از نخبگان علمی کشور بودن که تازگی ها مرحوم شد مرحوم دکتر سیادتی های جا کسانی که سوخ کردنی زیاد بخورن اینها دوچار کبد چرب میشن حرفشون بسیار دقیقه و درست همچنین بعضی از, از ساتین ما و دکترای بنام که بچه های جوهه رو جراهی میکردن کسانی که پایین تنهشون نقل و نبات خورده بود ترکش اینا خورده بود مثل دکتر به بنکدار ایشون بارها فرموده که کسانی که آنتیبیتیک میخورن چک خوشکنهای مختلف میخورن بدون اینکه عفونت افونت و چرک داخلی ثابت بشه عوارض سوی داره یکی از عوارضش روی کلیه هاست یکی از عوارضش روی کبده حرف ما هم ملت عزیز اگر گوش نبیدن اقلا حرف دکترای محترم متخصص متعهد رو گوش بدن ما تو کشور اون مشکل بیمارستان درمونگا دارو دکتر نداریم یکی از اشتباهات بعضی افراد چیه؟ نه به دین عمل می‌کنن نه به علم. پس مریضی زیاد میشه. آخرین نکردم هم ها. اینه که اون قرص گیاهی هم که از کنگر داشت کردن اونم مفید مؤمنان برای درمان اسمشو یه بار دیگه میگن می مؤمنان. بعضی از های سراح جمع به طرف بیمارستان امام رضا علیه السلام تازگی آوردن. ماشاءالله کارخانجاته تولید گیاهان داروی الحمدلله کشورمون فعال شده بیش از چل کارخونه شده متخصصین فلور ایران مثل دکتر قهرمان که بیش از 20 خورده جلد کتابش میشه 17 جلدش اومده ما خیلی کار میکنم خدا رحمت کنه یا خدا حفظ کنه نمیدونم محوم شده یا نه دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران ماله گیاهان داروی 89 جلد کتاب داره. خدا حفظ کنه مؤمنا دکتر حسین میرحیدر 80 کتاب در باره معرف گیاهی داره من. اینا همه متخصصین بزرگوار شیعه و صاحب نظر تخصصی ها تو بحث پیشگیری و درمان با گیاهان دارویی رباعیات اهل بیت اصمت و طهارت هم که الا الله از علامه مجلسی اعلی الله مقام شخور و عاملی من. محدث نوری محاسن برقی به شما ارز خیلی کتا تب بلنده علامه شبه اصلا زیادی بفهمید که افرادی که دوچار آرزه های استخوانی هستن مهم. مثلا دیسک دیسک گردن دیسک کمر بقید. که عوارز داخلی ندارند بس. آیا این گونه موارد رو افراد مبتلا می توانند با گیاه دارو بهبوت ببخشند هر جمله افرادی که دیسکی گردن دارند دیسکی کمر دارند یه سری مطالب و حاجه باید رعایت کنند قبل از بیماری و بعد از بیماری یکی اینکه بار سنگین رو سرشون بلند نکنند یکی دیگه روشونه هاشون باربر ندارن چون بعضی اساس کشی دارن برنایی دارن سوم این که در یک حالت سر زیاد نگه ندارن تو یک حالت زیاد نگه داشتن دردهای مهرای گردنی میاره. مثلا رانندگی ممتد نداشته باشن شیش الی هفت ساعت پشت فرمون خب اینا ها عصب میشه دردای گردنی، ستون فقرات پشتی، قوس کمر، مفصل مفصل زانو، مفصل مچپا، مبتلا میشه. مثل مطالعه پشت سرم، مثل خیاطی منجوگدوزی، حالا تلاکاری، تلاکوب، و دو. حالا اگر بخوایم بپردازیم به گیاه داروهایی بله که مناسبه بودشون. بله. حالا تو درمانش، تو درمانش نرمشای خاصی هست، ده مرتبه سر شروع پایین بیاره ده مرتبه رو به بالا 10 مرتبه دست چپ ده مرتبه دست راست. به صورت ملایم درد های شبه دیسک گردانی خوب میشه. با همین نرمش ملایم روزی یک بار این چهار تا ده تا رو تکرار کن که توضیح دادم. درد های شبه گردانی خوب میشه. با روغن سیاهدانی خالص، یعنی سیاهدانه که در روغن زیتون جوشیده این گردنشون ماساژ بدن به طرف بالا اگر مثلا فرض کنید که خوردگی نکه استخونه ها تو توعن با التهاب همین روغن سیاهدانه رو ماساژ یا زماد 20 دقیقه قبل همه کنید از چسبای شیمیای قویتر تر بعد برای اون سایدگی های مهره ای اگر بود سی تی اسکم گرفتن پیش متخصص مفاسب یا دیسک سیاتیک تکنیشون دادن حالا به جای قرصهای کلسیون دی یا کلسیون قضروف آمریکایی یکی میتونن سه شیره که شیره خورما و انگور توته روزی قشب پل و بخورن یکی شیر اصل یکی هم شیر خورما اینا قوی تر از اون دو تا قرص شیمیایی چه تولید داخلی چه تولید خارجی آثار سوء عوارض دارو شیمیایی نداره برای افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستن بسیار حالا... عالیه اونایی که استئوپروز یا پوکی استخوان دارن و این سشیره یا مسافت پودر سنجد با شیر بسیار عالیه تو مریضا بسیار جواب خوب داده و لوازیه یا کسانی که نرمی استخوان یا راشیتیست می دارن و این وزنشون رو ساق پا تحمل نمی و ساق پاشون میخواد پرانتزی بشه یا شده بعد اینها رو ما ماساژ دیم با روغن سیاه دونه یا با روغن های زیتون یا با روغن کنجد تو نور آفتاب ولی تو خوراکشون پودر سنجد با شیر شیر خورما شیر اثر و مصرف سشیره برای درمان همورویی یا همان یوبوست هم. یوبوست مزمن و یوبوست حد اینجا میتونن مربع انجیر یا شربت انجیر رو با قند یا با شیره تود درست کنن اگر دیابتی هم انجیر ملینه اونها هم ملینه وقتی که مخلوط و ممزوج میشه مصهل قویه رضا آلمانیا شربت فیجن هم درست کردم برای همین یوبوست کودکان شیرخار ولی اوسانس داره خوبشون درست کنن که بهتره بدون اوسانس با. مطلب دیگه گاهی افراد نوجوان و جوان یا میانسال و کهانسال چهار یوبوست حاد یا مزمنه یک بار مؤمنو بخوایم سریع هر نوع یوبوستی خوب کنیم سه تا ده متر فلوس سه تا ده سانتیمت فلوس تهیه میکنیم فلوس با همین نام در بله اتاریا. اتاریا هست دارویی که میفروشن مثل دکتر هاشمی وحید 15 خیام اون دریان مثل دکتر حکمت ملوار وکیل آباد از چی تشکیل شده؟ اینا یه گیاه گیاه فلوس بله بله بعد هاشمه سه تا ده فقط سه بعده من داخلشو با قاشخ میتراشم میزنم تو استکان روش آب جوش می‌ریزم یه 5 ده 10 دقیقه صبر می‌کنم هم می زنم می 3 تا 8 ساعت آفرین <تصفيق> احسان هر نوع یبوستی خوب میشه خیلی قویه این دیگه تموم شد فقط سه بار بعد همیشه تو جیریه قزاریشون با ناهار کاهو باشه بدون سس و فیبر گیاهی سبزی خوردن باشه لیمو شیرین پرتقالی بسیار خوبه مامرزا علیه السلام همیشه با قضاهاشون سبزی خوردن میخوردن سبزی خوردن مخلوط آلمانه این هم بسیار خوب هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه یوبوسد یه بار دیگه اگر یوبوسد شدیده میتونن از چهار گیاه استفاده کنن برگ سنا برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی اگر خانومی حامله هست یا بچه شیرده هست برگ سنا رو حس میکنیم چون برگ سنا سخت جنین میاره و شیر مادر رو کم میکنیم برگ سنا رو حس میکنیم جاش برگ گل محمدی میزنیم برای زن حامله و بچه شیرده گل برگ گل محمدی برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی اینا رو پود میکنن به نسبت مصابی یه قاشو مربع بخوری با یه لیوان آب میخورن اگر مثلا شخصی اگر مثلاً شخصی سالها یوگوستت مزمن شدید داشته یه قاشق پلوخوری از این مخلوط میگیم بخوره از این مخلوت چارگیا با دو لیوان آب تا شب ها جو بار میره قرادا صدام برای اینکه از فردا املاح بدنش کم نشه محتاج به سرم نشه از فردا میگیم یک قاشق مرب بخوری پودرش بخوره با یه لیوان آب روزی دو بار کار میکنه حاجه در خصوص رفع کبد چرب صحبت کردیم پرسش های خیلی زیادی شده برای لاغری موضعی باید چیکار کنم؟ کنن؟ در ناحیه شکم که تجمیع چربی ها هست یکی که رو کم کنه. بدخوریشونه کم کنن کم تحرکیشونه درمان کنن یعنی روزی نیم ساعت الی یک ساعت پیاده روی آرام داشته باشن نظر طبگیهی و اسلامی زنیان یک قاشق چایی زنیان گرم هم هست هجوان. بله بله پودر زنیان یک قاشق چایخوری خوری نیست تلخه اینه با گردو به جای بخوره حتی بواسیر دول. یا با اصل افره. یا با اصل بخوره حال که سوال دوم فرمودین این مال چاقی شکمی خوب میشه روزی یک بار تو 24 ساعت هر بار سر ساعت یک قاشق چای خوری پودر زنیا، با عسل کافی بعدم اون ستایی که گفتم پرخوری هر بار بودید یک سیبم بین غذا بله این سیب بعد از غذا. غذا بعد از غذا بعد از صبحونه بعد از نهار بعد از شام یک دونه سیب اگر یبوست و نفخ شکم داره آبش بگیره این یک سیب رسیده یه استکان آب سیب تازه بخوره صبح ناشتا با شکم گرسنه وقت نماز صبح یا سحر هم استکان آب سیب در 24 ساعت 4 تا سیب یا 4 تا استکان آب سیب نباید بیشتر بخورن تا چربی های مفید خونشون امگا 3 امگا 6 پایین نیاد اما مال بواسیر که سوال فرمودید بیماری هموروید با یوبوست مزمن یه مقدار فرق بود حالا این هم مؤمن دو جوره گایی همورایید یا بیماری بواسیر داخل رود آناله گایی خارج رود آناله یعنی اون انتهای روده بزرگ قبل از مقر یه بار داخلی، یه بار خارجه باز این دوتا یه بار خونی، یه بار غیر خونی غیر خونی هم سه قسمه گایی بادیه گایی دگمهیه گایی سجمهی اگر بواسیرشون خونی بود داروش سه چیزه یه قاشق چایخوری پودر سماق صبح میخونه سماغه بله بله همینی که میریزن رو کباب اها. پودر سماق تازه یه قاشق چایخوری خوری صبح میخونه یه قاشق چایخوری شب قبل خواب. به همراه نهارش یه مش سبزی تره چه تره زرایی چه تره وحشی که مناطق شمال در میاد به همراه شامش هم یه مش سبزی خورفه می‌خوره همین از روز سوم حاجبا درده پایین تنشون خوب میشه خونریزی کم میشه بعد از دو هفته کلن بواسیر خونی خوب میشه در بواسیر بادی که ورن میکنه این باد کنک اینجا داروش یک چیز خیلی هم خوشمزه انگور رو با هستش بجوهن روزی یکی دو تا خوشه انگور با حسش بجا بعدشون میاد بذارن تو بهحانه همزن با اون بخورن که حساشم له بشه. یک لیوان آب انگور با حسه له شدهش. در روز سوم در به پایین ترش به دو هفته میشه در بواسیر دگمه یا که مثل دگمه لباس یا ساجممه چرخ زائده ای می میزنه بیرون ممونوع بازم لازم نیست جرایی کنم. چون بیماری همارایید یا بواسیر از بیماری های برگشت پذیره. اگر یوبوسد در بیمار تکرار بشه بواسیر بر میگرد. اینجا میتونن زنیان با مغز گردو بخورن. به این فرمایش امام رضا عمل کنن. تو رساله که حضرت فرمودن. مع الجوز حالا به مثال طب مکمل توضیح بدم. مثلا یک قاشق چایخوری پودر زنیان با دو مغز گردو. یه مغزه گردو درسته میذارم تو دهنم نصف قاشق چایخوری گرد زنیان دو تا با هم میجوام قورت میدم یا اینکه نصف استکان عرق زنیان با دو مغزه گردو درسته یه مغزه گردو درسته تو دهنم میذارم یه قالب عرق زنیان دو تا با هم میجوام قورت میدم باز یه مغزه گردو درسته میذارم تو دهنم یه قالب عرق زنیان باش دو تا با هم میجوام قورت میدم تو بی سیاسته یک بار تا و سی و داکیومنتی و خوب میشه. از روز سوم به بعد خود مریض میبینه این حالت سفتی زمختیش مختش هم شد، نرم شد. بعد از دو هفته کم کم میینه داره ماتس میشه. بدون اینکه لاپاراسکوپی کنن، بیوسپی کنن، جراحی کنن. خیلی متشکرم آقا. سپاسگزارم. امیدوارم سلسله مباحث طب اسلامی و طب سنتی استاد حکیم جناب آجاقای زیایی مورد توجه شما قرار گرفته باشه من خواهش میکنم با ذکر دعایی برنامه رو فاسمه بدیم اللهم صلی عد و فاطمت و ابیها و